سالها دفتر ما در گروه صحبا بود رونق می کده از درس و دعای ما بود نیکی پیر مغان بین که ما بد مستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود دفتر دانش ما جمله بشویید به مید که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود از بوتان آن طلب ارحوس چناسیه دل که این کسی گفت که در علم نظر بینا بود دل چپرگار به هر سو دبرانی می کرد و دایره سرگشته پابرجا بود مطرب از درد محبت عملی می پرداخت که حکیمان جهان را مجه خون پالا بود می گفتم ز تربزان که چو گل بر لب جوی بر سرم سایه آن سر به سهی بالا بود پیر گل رنگ من اندر حق از رق پوشان رخصت خوبس ندادر نه حکایت ها بود قلب اندوده حافظ برای او خرج نشد که معامل به همه ای نهان بینا بود